فصل شانزدهم. فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی نشان دهد عیسی در جواب آنها گفت در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما می‌گویید هوا خوب خواهد و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد می‌گویید باران خواهد بود. شما که می توانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید چگونه نمی توانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید این نسل شریر و بیوفا جویای آیت است و آیتی به جز آیت یونس نبی بانها با داده نخواهد پس از آن ایسان ها را ترک کرد و از آنجا رفت شاگردان به آن طرف دریا می ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند پس وقتی عیسی به ایشان فرمود از خمیر فریسیان و صدوقیان برخذر باش و احتیاط کنید آنها در بین خود صحبت کرده میگفتند چون ما نان همراه خود نیابردهیم او چنین می عیسی ایسا این را در کرد و به ایشان گفت ای کم ایمان چرا درباره نداشتن نان صحبت می آیا هنوز هم نمیفهمید؟ آیا آن پنج نان و پنج هزار مرد را به خاطر ندارید، چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن هفت نان و چار هزار مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم، من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ آنگاه فهمیدند که ایسا از آنان می خواهد؟ که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان وقتی به نواهی اطراف قیصریه فلیپوس رسید از شاگردان خود پرسید به نظر مردم پسر انسان کیست آنها جواب دادند، بعضی ها می گوین یحیای تعمید دهنده است و اددهی می الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیاست ایسا پرسید شما مرا کی میدانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا خوشا به حال تو چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را برای تو مکشوف ساخته است و به تو می گویم که تو پتروس هستی و من بر این سخر کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز آن شیره نخواهد شد. و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می دهم. آنچرا که تو در زمین من کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچرا که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد اما پتروس عیسی را به کنار کشید و با اعتراض به او گفت خدا نکند خیر خداوند هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد ایسا برگشته به پتروس گفت دور شو ای شیطان تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانیست نه خدایی سپس ایسا به شاگردان خود فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست میدهد اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد، اما جان خود را از دست بدهد، زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی توانند را یابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان میآید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش می دهد. بدانی که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادن، تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند، نخواهند مرد.